هفتم. سه سال پیش تقریبا همان دورانی که این پیرزن به من حمله کرد ولی نزدیک ماه جوان یا جویه توی خیابان ساحلی تورنل قدم میزدم شنبه بود و غروبی آفتابی به کتابهای جعبه کتاب فروشهای دورگرد نگاه میکردم ناگهان چشمم به سجلت کتاب افتاد که با کش قرمز هم بسته شده و کاملا جلوی دید بودند روی جلد اول که زرد بود با حروف سیاه نام نویسنده و عنوانش را نوشته بودند که منغلبم کرد پرده های زن اثر فرد بوویر کش را برداشتم دو کتاب دیگر از بوویر اعتیاد و روش های درمان دروغ و اعتراف تو این کتاب ها چند بار به کلاس های دانفر روشه رو اشاره شده بود سه کتاب نایاب که خودش با کنایان ها را آثار جوانیش میخواند. تاریخ انتشارشان همراه نام ناشر پایین جلد نوشته شده بود نشر سابلیه. درست است بدون شک بویران زمان جوان بود شاید بیست دو دو یا بیست ساله هر سه کتاب را خریدم روی صفحه اول دروغ و اعتراف اهدانامه دیدم تقدیم به جنبی و دلم این کتاب زمانی که همسن بودم نوشته شد دوره منع عبور و مرور فرد بوویر دو کتاب دیگر به کسی اهدا نشده بودند ولی مثل قبلی روی صفحه اولشان نام جنوی و دالم با جوهر آبی نوشته شده بود به اضافه یک آدرس بلوار جوردان شماره چهار قیافه دختر بوری که پوست بسیار رنگ ای داشت و همیشه سایه به سایه بویر بود و آخر هر جلسه کنارش روی صندلی ماشین مینشست پسری سری که قیافه قرغی داشت و با صدای آهسته می گفت اسمش جنوی دالامه همه اینها دوباره به ذهنم برگشتند از کتاب پروش پرسیدم این کتابها را از کجا پیدا کرده؟ شانه بالا انداخت اوه یه اسباب کشی وقتی یادم اومد جنوی و دالام با آن چشمای آبیش چطور به بویر ظلمی زد و حرفهایش را می با خودم گفتم محال است به این راحتی از خیر این سه کتاب گذشته باشد. مگر آنکه بخواهد با بخشی از زندگیش به شکل بیرحمانهی خداحافظی کند یا اینکه مرده باشد. بلوار جاردان شماره چهار وقتی توی یکی از اتاقهای هتل خیابان واورت زندگی می کردم در دو قدمیم بود. ولی نیازی به بررسی نبود. میدانستم. پانزده سالی می شود که آن ساختمان دیگر وجود ندارد و نام خیابان واوارد هم عوض شده است. یادم می یکی از آن روزها می خواستم سوار اتوبوس خط 21 به مقصد پورت دوژانتی شوم. داشت از سوی آن ساختمان کوچک بیرون می آمد. جرعت نکرده بودم سمتش بروم. او هم منتظر اتوبوس بود و هر دو توی ایستگاه تنها بودیم. من رو نمی شناخت و این کاملا طبیعی بود، چون در تمام نشست فقط بویر را میدید و بقیه اعضای گروه چهره نامشخص در حاله نورانی اطراف بویر بودند. وقتی اتوبوس را افتاد، ما تنها مسافرهایش بودیم روی صندلی رو نشسته بودم. اسمی را که غرقی چند روز پیش در گوشم زمزمه کرده بود خوب یاد داشتم جنوی و دالم غرقه در کتابی بود که با کاغذ نیمه شفاف جلد شده بود شاید همان کتابی که بویر در دوران من عبور و مرور نوشته و به او تقدیم کرده بود چشم از او بر داشتم. یادم نیز کجا خانده بودم که اگر به کسی حتی از پشت خیر شوید متوجه حضورتان می شود این موضوع در مورد او مدت خیلی زیادی طول کشید. وقتی اتوبوس از خیابان گلاسیر میگذشت نیمچه نگاهی به من انداخت. گفتم: شما رو تو جلسه های دکتر باویر دیدم. گمان میکردم با گفتن این اسم توجهش را جلب می کنم، ولی با شک نگاه هم می کرد. دنبال حرف میگشتم که یه خش را باز کنم. گفتم: جالبه؟ دکتر بوویر به همه سوالهایی که تو زندگی به ذهن آدم میرسه جواب میده. حالت متفکرانه ای به خودم گرفتم. انگار فقط کافی بود اسم بوویر به زبان بیاید تا از زندگی روزمره و اتوبوسی که سوارش بودیم جدا شوم. به نظرم رسید اعتمادش را به دست آوردم. استاد عقیدتیمان یکی بود و در مناسک و اسرار هم شریک بودیم. پرسید خیلی وقت تو این کلاس شرکت شرکت میکنین؟ چند ای میشه؟ میخواییم ارتباط نزدیکتری باش داشته باشین؟ این جمله را با تکبر خاصی پرسید انگار او تنها واسطه بین بویر و انبوه مریدانش بود گفتم به این نه. ترجیح میدم بیشتر منتظر بمونم لحن صدایم به قدری متین بود؟ که دیگر نمی توانست به جدی بودنم شک کند لبخندی زد حتی خیال کردم در چشمای درشت و آبی رنگ پریدهاش نوعی مهر و محبت نسبت به من وجود دارد ولی هرگز سر خودم را با توهم شیره نمی مالیدم. این را مدیون بویر بودم ساعت مردانهای دستش بسته بود که با ظرافت مچش جور در نمی آمد. دسته سیاه چرمی به اندازه کافی تنگ نبود. کتاب رو با حرکت تند و تیزی توی کیفش فرو برد. ساعت سر خورد و افتاد. خم شدم برش دارم. با خودم گفتم باید ساعت قدیمی بوویر باشد. از بوویر خواست آن را به دستش ببندد تا همیشه نشانی از او با خودش داشته باشد. خواستم کمکش کنم دسته چرمی دور مچش خوب محکم شود اما واقعا برای دستش خیلی کشاد بود. آن وقت پایین مچش روی رک ها جای زخم تازهی دیدم که هنوز رنگش صورتی بود. یک رشته تاول کوچک. اول احساس بدی به من دست داد. جای زخم هیچ تناسبی نداشت با آن روز آفتابی زمستان که با یک دختر بور چشم آبی توی اتوبوس نشسته بودم. من آدمی معمولی بودم که به خوشبختی فکر می کردم و هوای پارک فرانسوی در سرم داشتم. گاهی افکار سیاه به ذهنم خطور میکردند. کردند ولی خلاف میلم. شاید او هم قبلا همین وضعیت را داشته. از لبخند و نگاهش می فهمید که قبل از آشنایی با دکتر بوویر زندگی را سخت نمی بیتردید، بویر شادی را از زندگیش گرفته بود. متوجه شد جای زخم را دیدم. بنابراین دستش را رو صاف روی زانویش گذاشت که دیده نشود. دوست داشتم در مورد چیزهای بی اهمیت حرف بزنم. آیا هنوز دانشجوست است یا تا حالا شعری پیدا کرده؟ توضیح داتی در معسسهی به نام اوبرا انتریم ماشین نویسی می کند. یک هو شروع کرد به طبیعی حرف زدن و دیگر هیچ نشانه ای از آن قدرت و تظاهری که با پیش کشیدن اسم دکتر در او سراغ داشتم دیده نمیشد. بله، بالاخره مطمئن شدم قبل از قرار گرفتن سر راه بویر بو دختری ساده و معمولی بوده. افسوس میخوردم: چرا آن موقع ندیده بودمش؟ پرسیدم مدت زیادی است که در نشستها شرکت میکند؟ حدود یک سال. گفت اول برایش سخت بود و چیز زیادی نمیفهمید. هیچ چیز از فلسفه نمیدانست. تحصیلاتش را در مقطع دیپلم بازرگانی حرفه‌ای رها کرده بود فکر کرده بود آدم توانایی نیست و این احساس او را تا بحران ناامیدی پیش برده بود با گفتن آخرین حرفهایش شاید میخواست دلیل زخم روی مچش را بفهماند بعد دکتر کمکش کرده بود به این عدم اعتماده به نفس غلبه کند به لطف او موفق شده بود این کار سخت را انجام دهد و از آن حالت بیرون بیاید واقعا مدیون باویر بود چون توانسته بود او را به سطحی برساند که شاید به تنهایی هرگز نمی توانست از احتش بر بیاید کجا با او آشنا شده بود؟ آه توی یک کافه قبل از برگشتن سر کارش در دفتر آنجا ساندویچ میخورده. باویر که داشت یکی از درسهای دانشجو ارشدش ارشدش راماده را میکرد وقتی فهمیده بود ماشین نویس است از او خواسته بود متنی برایش تایپ کند نزدیک بود بگویم من هم بار اول باویر را توی کافه دیدم اما ترسیدم نکند موضوع دردناکی را پیش بکشم شاید از وجود زنی که بارانی پوست پوشیده بود و می گفتفت دفعه بعد فکر خرج و م خاارجممو میکنین؟ خبر داشت. حالا اگر آن زن علت اصلی زخم روی مچش بود چه اتفاقی میافتاد. شاید هم علتش خود بویر بو با آن زندگی احساسیش بود همان چیزی که در نگاه اول به نظرم عجیب آمده بود. خواستم بدانم کدام ایستگاه پیاده می شود. ایستگاه پتیشان دانیل کازان وا. برای ایستگاه لوکزامبورگ بلیط گرفته بودم ولی اهمیتی نداشت میخواستم تا آخر هم همراهش باشم به اپرا انترین می‌رفت، میرفت ولی گفت به زودی این شغل را کنار میگذارد دکتر قول یک کار تمام وقت به او داده بود قرار شده بود درسها و مقالههایش را تایپ کند و سازماندهی جلسه ها و فراخن و ارسال بخشنامه ها به گروه های مختلف را بر عهده بگیرد. خوشحال بود که بالاخره کاری واقعی دست و پا کرده و زندگیش معنا پیدا می کند. پس میخواین خودتون حسابی وقت به دکتر کنید؟ این جمله از دهانم پرید و به محض گفتنش پشیمان شدم. نگاه آبی رنگ پریدش را با سرسختی خاصی به من دوخت. خواستم ناشیگریم را با اظهار نظر کلی لاپوشانی کنم. میدونین استاده یقیدتی همیشه نمیتونن سبک سنگین کنن که چه تأثیری روی شاگرداشون میذارن. نگاهش نرم شد. احساس میکردم دیگر نمیبیندم. انگار توی افکارش غرق شده بود. پرسید اینطور فکر می کنی؟ در این سوال به قدری دست دستپاچگی و معصومیت وجود داشت که متأثرم کرد. کاری واقعی که به به زندگیش معنا میداد. در حال خواسته بود به زندگیش خاتمه دهد، البته اگر قضاوتم در مورد زخم پایین مچش درست باشد. دوست داشتم با من درد دل کند. لحظه ی آرزو کردم توی آن اتوبوس. صورتش به صورت من نزدیک شود و مدت زیادی در گوشم حرف بزند و کسی جز من حرفهایش را نشنود دوباره با نگاه ای به من خیره شد به سردی گفت باهاتون موافق نیستم من به استاد فلسفه احتیاج دارم سرم را تکان دادم هیچ جوابی نداشتم به پال رویال رسیده بودیم اتوبوس از روبروی روک اوونیار می‌گذشت همان کافه‌ای که معمولاً با پدرم توی تراسش می نشستیم پدرم حرف نمیزد و هر دو بیان که سکوت را بشکنیم از هم جدا میشدیم. راهبندان سنگین بود اتوبوس نرم نرمک جلو میرفت. باید از این فرصت برای شناخت بهتر ژنویو دالام استفاده میکردم و سؤالهایی پیش میکشیدم. ولی انگار داشت به چیزی فکر میکرد و ذهنش کاملا مشغول بود تا ایستگاه پتیشان دانیل کازانوا یک کلمه هم رد و بدل نشد بعد از اتوبوس پیاده شدیم در پیاده رو با دست چپش یعنی همون دست ساعت و جای زخم گیج و مبهود دستم را فشار داد گفتم تا جرسه بعد ولی در جسه بعد اصلا متوجه حضورم نبود رفت طرف بالای خیابان اپرا و خیلی زود از تیر رسم محو شد آن ساعت جمعیت خیلی زیادی دوی پیاده رو بود.